گوینده یانده فریده ارز سلام و ادب و احترام خدمت دوستان و همراهان عزیز با قسمت چهارم از داستان زال این قهرمان افسانه ای ای شاهنامه حکیم توس فردوسی بزرگ در خدمتتون هستم در برنامه قبل به اینجا رسیدیم که زال در نزدیکی کابل اردو میزنه و اونجا ملاقاتی با مهراب حاکم کابل داره که دست ورغذا از نوادگان زهاکه و این جناب مهراب دختر زیبایی داره به اسم رودابه بر اساس توصیفاتی که مهراب نزد همسرش و دخترش رودابه در مورد زال میکنه رودابه خانم بسیار مشتاق دیدار زال میشه و یه جوری ندیده و نشناخته آشق زال میشه بر حسب تصادف اونها در بیش زاری که زال برای شکار رفته بود با هم ملاقاتی میکنند و این دلدادگی صد چندان میشه از یک طرف رودابه عاشق برو بازو قد قامت و چهره زیبای درخشان زال میشه و از طرف دیگه زال زر عاشق متانت زیبایی و وقار و شخصیت این دختر که از بخت بد نسبش به زهاک ماردوش میرسه خودش میدونست که با این وصلت به هیچ وجه نسام موافقه و نه منوچه ارشاه پادشاه ایران و بعد از مشورتی که با دوستانش میکنه به این نتیجه میرسه که نامه ای به سام بنویسه و ماجرا رو برای اون توضیح بده زمین اون عهد معروفی که سام موقع پیدا کردن و بازگردوندن زال بسته بود و گفته بود که از این به بعد هر ای که داشته باشی بی چون و چرا باروت برآورده میکنم رو به یادش آورد سواری نامه رو به گرگ ساران جایی که سام و لشکریانش مشغول جدال با دشمنان ایران بودند میرسونه در این برنامه به ادامه این داستان و اتفاقاتی که از این پس میفته میپردازیم با ما همراه باشید سام و سپاهیانش پس از اینکه دشمن را شکست دادند و آماده برگشت شده بودند، در پای کوهی پوشیده از درخت و به در یک جای بسیار سبز و خورم اردو میزنند. سربازها و سپاهیان بسیار شاد و سربلند و مغرور از پیروزیشون سرگرمه. خوش و استراحت بعد از اون نبرد بودند که ناگهان از دور می‌بینند سواری داره نزدیک میشه به سام پیام میدن که سواری داره به این سمت میاد سام وقتی که صدای دیدبان لشکریانش رو شنید از خیمه‌گاهش بیرون اومد تا ببینه این سوار کیه و وقتی سوار به نزدیک اونجا رسید از اسب پیاده شد و عدای احترام کرد متوجه شد که این کسی نیست جز پیکی که از زال فرزند دل بندش براش نامه ای آورده. بسیار خوشحال شد نامه را از دست پیک گرفت و تنها وارد خی شد تا ببینه پسر عزیزش چه نامه ای براش نوشته چون خیلی دلتنگ زال بود. وقتی که نامه رو خوند و دید که داستان داستان عشق زال و رودابه دختر مهراب به که نسب و نژادش به زهاک ماردوش میرسه بسیار اندوهگین و ناراحت شد در اون نامه خوند که زال پیمان و عهدی که پدرش با اون بسته بود رو هم یادآوری کرده و این یکی از کارهای زیرکانه زال در این قسمت بود سام پیش خودش گفت اگر با این ازدواج مخالفت کنم یعنی اینکه که پیمان شکنی کردم و پیمان شکنی در آین ما ایرانی ها کاری بسیار ناپسند و موجب لعن و نفرین آم برای من میشه و سرشکستگی ولی از سوی دیگه اگر موافقت کنم با این ازدواج و به ظال بگم هر کاری که دوست داری برو انجام بده اون وقت جواب منوچه شاه رو چی بدم؟ و از طرف دیگه رودابه دختر مهرب از نوادگان زهاک ماردوش نجات و پسر من که تربیت شده یک مرغ افثانهی در کوه البرزه ازدواجشون چه حاصلی ممکنه داشته باشه نکنه یک فرزندی به دنیا بیارن بد نژاد که باعث سرشکستگی و بدنامی خاندان من بشه سام همینطور دلنگرون و پر از اندیشه بود و نمیدونست چیکار کنه و این بار هم همونطور که در هنگام به دنیا آمدن زال دوچار کجندیشی و بدبینی و داوری نادرست شده بود این بار هم داوری نادرستی کرد سرانجام این مسئله رو با مشاورینش و رایزنانش زنانش مطرح کرد و از اونها چاره کار رو پرسید میخواست بدونه که آیا پیوند زال و رودابه کار درستیه یا نه اگه این دو با هم پیوند کنند حاصل اون نیکبختی اون دو و خاندان سام خواهد بود یا مایه شوربختی و نگونبختی خواهد شد مشاورین و خردمندان و پیران کارآزموده ای که در انجمن دعوت شده بودند بعد از مدتی فکر به سراغ سام رفتن و بهش گفتن ای پهلوان دلیر اندیشه بد از خود دور کن زیرا ما به تو مژده میدیم که از این پیوند فرخنده تر وجود نداره و حاصل ازدواج زال و رودابه پهلوانی است نیرومند بزرگ رادمرد که در هر هنری سرآمد همه پهلوانان خواهد بود و حامی ایران و پشت و پناه لشکریان ایران خواهد شد سام که این خبر رو شنید پیک زال رو صدا کرد و به اون گفت برو و به زال بگو که من از پیمان خودم نمیگذرم و هر چه که تو آرزو میکنی رو برآورده میکنم کار ما در جنگ به پایان رسیده و من راهی کابل میشم تا ترتیب خواستگاری رودا رو برای تو بدم فرستاده با شنیدن پیام جستی زد و سوار به اسب شد و مثل برق و باد به سمت اردوگاه زال در نزدیکی کابل به راه افتاد سام سپاه رو جمع کرد و آماده شد که به سمت سیستان و در واقع به منطقه کابل بره تا همونجا مراسم خواستگاری از رودابه رو انجام بده از اون طرف در قصر محراب کابلی ای به پا بود رودابه هر روز آشقتر بی شد و این عاشقی، به شکل ضعف جسمانی و پرید رنگی در ظاهرش مشخص بود تمام فکر و ذکر و خرد و خوراک اون شده بود اون پهلوان زیبا و دلیر و مهری که با اون داشت سیندخت مادر رودابه و همسر مهراب زنی بسیار باهوش بود و نگران و کنچکاف شد که علت این افسردگی و رنگ پریدگی و بی دختر چیه؟ و بالاخره با بررسی های مختلف و از اینو اون پرسیدن و سراغ ندیمه ها رفتن متوجه شد که این ماجرا ماجرای عشقه یک روز رودا به گریان و نالان به سیندخت گفت ای مادر هوشمند و پرخرد من من از مهر زال اینجوری بیتاب شدم بدون اون دنیا برام تنگ و تاریک شده و روز و شب گریون و دردمندم من فقط اونو یک بار در بیش هزاری در رضی کابل دیدم و تنها شیفته روی و موی اون نیستم بلکه فروتنی جوانمردی و غسلت پهلوانی اونه که دل منو برده و منو اینجور شیفته و عاشق کرده اما مادر عزیزم بدون که اون هم همین احساس رو به من داره چون که من از طریق ندیمه و جاسوس هایی که به اونجا فرستادم و با پیشخدمت و مستخدمین زال صحبت کردند متوجه شدم که زال پهلوان هم به من علاقه پیدا کرده و ظاهرا این مسئله رو با پدرش سام نریمان هم مطرح کرده تا به زودی برای خواستگاری من بیام سیندخت بسیار متعجب و شگفت زده شد از یک سو میدونست داشتن دامادی مثل زال چه افتخار بزرگیه و چه وصلت مبارکی خواهد بود این وسلت اما از چیز دیگهای حراسدا سین دوخت هم از عاقبت این پیوند همونطور که زال به شیوهی دیگه نگران بود احساس دلشور و نگرانی میکرد اما هر چه سعی کرد با پند و نصیحت را از این عشق منصرف کنه نتونست کار عشق کار پنده اندرز نیست بلعقره تسلیم این خواست دخترش شد و رفت سراغ جناب مهراب کابلی قصر و محل حکومت کابل را از غریبه ها خالی کرد و گفت که میخوام تنها با همسرم فرمان روای کابل صحبت کنم و بعد خیلی آروم و متین شروع به صحبت کرد که این فرمان روای بزرگ بد نیست بدونی که زال دخترت رو بعد جوری شیفته خودش کرده و خودش هم دلباخته رودابه است پهلوان زابلستان پسر سام نریمان تصمیم گرفته که رودابه را از تو خواستگاری کنه اما من نگرانم که این پیوند ممکنه سرانجام شومی داشته باشه و چه بسا که مشکلات بزرگی برای دو طرف ایجاد کنه مهراب هم که اینو شنید عصبانی شد و سخت برای شفت و گفت من باید این دختر خیر سر و گستاخ رو خونشو به زمین بریزم. همون روز اولی که به دنیا اومد من باید این کار رو میکردم. چرا که این دختر جز ننگ و ذره روزیان برای من هیچی به همراه نداشته. مگه اون نمیدونه که ما از خاندان زهاکیم و منوچه ارشاه ما رو بد نژاد و بدگوهر میدونه و محال ممکنه که با ازدواج یک ایرانی پاک نژاد اون هم از نژاد سام نریمان با دختر ما موافقت کنه و این ممکنه باعث خشم منوچه ارشاه بشه و باعث بشه که به اینجا لشکرکشی کنه و همه ما و مردم کابل را از دم تیغ بگذرونه. سامنریمان اریمان هیچ وقت زیر بار این قضیه نمیره که پسرش با دختری از نژاد زه ازدواج کنه. بنابراین من الان میرم سر این دختر را از گردنش جدا میکنم تا این قائل ختم بشه و مردم کابل هم در امان بمونه. سیندخت خیلی تلاش کرد که همسرش رو آروم کنه و بهش گفت بدیست بدونی که سام سوار از این کار خبردار شده و با این پیوند هم موافقه الان هم در راه کابله تا رودابر و خواستگاری کنه محراب پاسست کرد به فرورفت فرو رفت فکرش درگیر شد و دوباره سر جاش روی تخت نشست اما توی دلش آشوبی به پا بود براش خیلی عجیب بود که سام با این پیوند موافقت کرده اما اینو میدونست که منو هرگز هر تن به این خواسته نمیده، و تا زمانی که منو از این قضیه و این ماجرا ناراضیه این پیوند سر نخواهد گرفت. بعد هم به سیندخت گفت حالا برو رودابر بردار بیار پیش من سیندخت که خشم مهراب رو دید بسیار به حراس افتاد ترسید که نکنه وقتی رودابر رو به نزد پدرش میاره اون بلایی سرش بیاره و یهو ناگهانی شمشیر بکشه و بزنه دختر بیچاره رو بکشه برای همین از مهراب پیمان و قسم خواست که آسیبی به روداب نرسونه او هم گفت خیالت راحت باشه من فعلا کاری با این دختره خیره سر چشم سفید ندارم فقط بگو زود بیاد پیشه من سیندخت سراغ دخترش رفت و گفتش که مجده بده خشم پدر داروم شده ماجرای عشق تو و زال رو بهش گفتم و زمنان میدونه که دیر یا زود سام و زال برای خواستگاری به این جامعه ولی الان برای اینکه اون آروم بمونه و عصبانیتش فروکش کنه تو باید با یک حالت زار و شرمگین به سراغش بری ازش عذرخواهی کنی و یه جوری دلشو به دست بیاری بذاری که این قضیه فعلا ختم به خیر شه به قول من رو اما رودا به خیلی دختر گستاخو در نوع خودش در اون زمونه دختر خاصی بود برای همین گفت زاری و پوزش برای چی؟ من که گناهی نکردم مگر عشق و ازدواج گناهه؟ مادرش گفتش که نعزیزم گناه نیست ولی خب حالا شما یه سر کوتاه بیا بذار پدرتم آروم بشه تا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته سامن نریمان داره با لشکرش میاد اینجا و خلاصه اینکه بذار ببینیم اوزا چه چجوری پیش میره تو فعلا برو از پدر خواهی کن از اون دلجویی کن تا خشم اون فروکش کنه و ببینیم که بعدها چه اتفاقی میفته خب دوستان ظاهرا قصه عشق زال و رودابه به این زودیا قرار نیست تموم بشه خب شاید هم حق دارن طرفین به خاطر اصل و نسب گذشته یه مقداری از این ازدواج ترسان و لرزان و مشکوکن به این قضیه حالا باید ببینیم هنوز نمیدونیم که منوچهر شاه چه عکس عملی خواهد داشت و اگر اون از این ماجرا باخبر بشه چه برخوردی با این قضیه که خواهد کرد؟ ادامه این داستان رو میذاریم برای برنامه بعد. امیدوارم از این قصه لذت برده باشید و از شاهنامه رو همچنان دنبال کنید. اگر کم و کاستی در اجرا متن و هر قسمت این اپیزود هست، خوحال میشم که در کامنت ها ما رو راهنمایی و یاری کنید در بهبود این کار تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میرم روز روزگارتون به